بسم الله الرحمن الرحیم اد درس الخامس درس پنجم بقیه تو اصناف اعراب الاسم بقیه اصناف اعراب اسم یعنی این درس ادامه درس قبل هست ما در درس قبلی علامت های اعراب رو خوندیم که هر علامتی مخصوص چی کلمه ای بود؟ یا به عبارتی دیگر به کلمات در حالت رفع نصب و جر چه علامتی رو میپذیرفتن که اینا رو صرف بندی کرده بود اینا رو چیکار کرده بود که چه صرف رو توضیح دادیم در درس قبلی الخامس خامس صرف پنجم ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء مفتوحی ما قبلها رفع با الف باشد یعنی کلمه ای که هر با مرفوش شد چی میگیری آخرش؟ الف. و نسب و جر بلیا المفتوحی ما قبلها نسب و جر با یایی که قبل از اونیا چه حرکتی داشته باشد؟ فتحه مانند جا زیدان اینجا زیدان مرفوه با چی؟ علامت رفت چیه؟ یا علیف هلگه نون که هم هیچ از علامت اعراب نیست بخاطرین در حالت مضاف بودن هست میشه نهار. جا زیدان رعی تو زیدین مررتو تو بزیدین آه؟ پس سنف پنجم رفت با الف باشه نصب و جر با یایی که قبل از یا چه هست؟ نهار. بخاطر این که ما جای دیگر یا جز علامت ها هست ولی اونجا قبلش کس هست قاطرین گفت ما قبلش فتحه باشه علف همیشه در هر حالت قبلش علف فتحه هست خب و اختصو بالمسنع این صرف مخصوص چه کلماتیه که رفت با علف نت بجربایا مختص مسنعست مختص چه هست دیگه چی کلا و کلتا مختص کلمه کلا و کلتا یعنی این دوتا کلمه کلا و کلتا هر دو مرفو واقع شدند علف می گرند جاعت زیدانی کلاه هما جاعت امرعتانی کلتا چه زمان؟ اذا کانا مضافعنی الی ضمیر شرط کلاه و کلتا این هست که مضافع به چه باشند؟ به باشند و اثنانی و اثنتانی دیگر این صنف مخصوص دیگه چی کلماتی است؟ کلمه اسنان و اثنتان کلمه اسنان و اثنتان اعراب مصنع رو دارند به عبارتی دیگر اون صنفی رو دارند که رفع با علف است، نصب و جر با یای ما قبل مفتوح مانند جانی جا الرجلانی آمدن پیش من الرجلان الرجلان نقش شه هست؟ فائل مرفوب با علف چرا؟ چون گفت که مصنع رفعش با است، هست؟ با کلا با علیه کلاه هما كلا مرفو با چی؟ با, علیم. با, علیم. با علیم. شرطی که به این بله کلا, میشه باشد. دیگه مضاف باشد. مضاف کلا و کلطا نشه مضاف به ضمیر باشن مخصوص و کلطا خودشون ظیرن کلمه بعدی مضاف الیه دیگه نه این دوتا مضاف باشن کلا و کلتا چه باشن مضاف به اون شرطی که رد شده رفت جا علی الرجال کلاهما و و حرف چه هست اتحسد. اثنان پس اعراب الرجلان رو دیگه دا داره پس اثنان مرکوه با چی؟ با الف. و رأیت الرجلینی دیدن پس این حالت رفی بود پس آقا المسنها کلمه و کلتا و اثنان و اثنتان جز این سنفن یعنی رفشون با علفه و نصب جر با بایای مردم مفتوه در حالة الناس مثالا ورده رأيت الرجلين كلهما وثنين الرجلين <تصفيق> معفول بهه منصوب بايا كلهما تأكيدش هست كله هما كمضافون إليه هست وثنين معطوف هست به الرجلين چون الرجلين منصوب هست پس اثنين هم جا منصوب هست علامة الناس ياه مرر تو بر رجولینی کلیه و اثنینی. این هم مثل قبلی از ولی اینجا مجرور هست انتون حرف جر و مدروش پس باله پس مصنها و کلتا اثنان و اثنتان جزء این سنفه رابن یعنی دو مرفوب باشن علامت رفت الف و نسب و جر علامت چه در اینها یا هست یا این yeah. yeah. yeah. yeah. ماقم مفتوح السادس سنف ششون این یکون الرفع بالواب المضمومی ما قبلها رفع بوابی باشد که ما قبلش چه هست؟ زمی و النصب والجر بالیای المکسوری ما قبلها نصب و جر قبل که قبلزیا چه هست؟ کسری این مخصوص چی کلاماتیست؟ و یختص بالجمع المذکر الصالد و این مختص جمع مذکر سال نست یعنی جمع مذکر سالم مگر مرفو شد علامه طرف واوه منصوب یا مجروش شد یا علامه سال خودش آورده و الملحق بهی دیگه کلماتی که ملحق به جمع مذکرند آقایان بزرگوارند کلماتی که ملحق به جمع مذکر هستند همین سن فیرابو دارند خودش میگه که اولی و اشرینا و اخواتی ها مانند کلمه اولی یا همه اولو در حال طرف جاء اولو العلم میگم اولو مرفوع علامت رف وان از ملحقات جمع مذكره یشرون و اخوات یشرون اخواتش کدوم هستن؟ یشرون سلاسون، یشرون یعنی بیست، سلاسون، چهل، چهل و اینا اخوات اشرون هستند. پس کلمه اولی اولی که در حالت رفت میشه اولو ملحقه بجن مذکر هست اشرون و اخواتش ملحقه بجن مذاکر هستند. تقولو و کلمات دیگهی که البته اینجا بحث نکرده ولی در کتابهای بزرگتر از این بحثشونو کرده که مهم این است که نوع اعرابشونو فعلا یاد بگیرید در این کتاب ماننده تا قولوا جاءني مسلمون مسلمون نخشش چه است واو منقم ندونه فاعل دیگه جاءني مسلمون فاعل علامت رفع وا مسلمون چون مسلمون مرفوعه مرفوع علامت رفع چی است معطوف به مسلمون هست موسلم. پس مرفوب با چی؟ واق این حالت رفشون بود حالت نصف رئیتو مسلمین یای مقر مکسور چرا؟ چون منصوب مفعول به هست منصوب هست با یا اشرین yeah. معطوف به مسلمین هست منصوب هست علامت نصف یا هست رجلان هم تمیز هست و اولی مالن اولی هم ك... چون معطوف به مسلمین هست مجبور ها چی منصوب هست با یا مالن که مضافنلی هست این حالت نصفشون بود اما حالت جر مرر تو بیت مسلمین مسلمین مجبور به حرف جر علامت جر یا هست و 20 رجل 20 معطوف هست و مجبور با یا ولی همچنین معطوف و مجرور با یا ولی نقطه ای رو میخواد بگوید و ان نون التسمیت مقصورت آبدان در مورد خود نون مصنا و نون جمع مذکر میخواد بگه میگه بدان که نون مصنا همیشه کسره داره رجولانی زیدانی کتابانی ها همیشه نون مسنه چی داره؟, داره؟ کسره و نون الجمعی مفتوحتون ابدا و نون جمع مذکر سالم همیشه چی داره؟ منظور ازابدن یعنی همیشه بله مانند المسلمونه المسلمینه نون جمع مذکر سالم همیشه چی هست؟ همیشه فتحه دارد و هما یز قطانی اضافه نقطه دیگری میخواد بگه میگه نون مسنا و نون جمع مذکر سالم هنگام مضاف بودن ساقط میشوند نونشون بله مانند جا غلاما زیدن غلاما که فائل هست مرفوع هست علامه طرف الف هست اگر ما اینجا مضافش نمی کردیم اینجوری میشد. شد جانی غلامانی ولی چون اینجا مضافه به زید هست نون چی شده؟ بله زیدن هم مضافه هست و مسلمون مصر مسلمون در اصل هست ولی چون اینجا مضافه نون چی شده؟ در قرآن همه اومده یدانی در اصل هست ولی مضافه به ابی هست بخاطر همین هست که ابی مدروری تون مضافه لیلیه دیگه و با علامت یا هست خب اصابع اصابع سنف هفتم، این یکون رفع به تقدیر اینا دقت کنید شما این رابط معمولا مشکلات های اصابع سنت هفتم ایه کون الرف بی تقدیر بمتی و نصف بی تقدیر فتحتی والجر الجر بی تقدیر کسره یعنی کلماتی که در هر سحالت ایراب شخص تقدیری پس <تاقديري> هفتومین سنت این هست که رف با تقدیر ذمه باشه نصف با تقدیر فتحه و جر هم با تقدیر كسره یا با كسره تقدیری و یختص بالمقصور این سنف مختص اسمهای مقصور هست خودش تعریفش بکنه والمقصور و هو ما آخر هو الف مقصوره مقصور آنست که آخرین حرفش علف چه باشه نحو موسا جاء موسی رعیتو موسا مررت به موسا اونجایی که بود با زمه تقدیری اونجایی که منصوب بود با فتح تقدیری و اونجایی که مجرور بود با کسر تقدیری پس این سنفه هفتم مختص مقصور دیگه مختص چه ها و بالمضافه الى یا متكلمی غیر تثنیتی والجمع المذکر سالم میگه این مختص مضافه بیای متکلم هست مختص به اون کلماتی هست که مضافه بیای متکلم مانند جا صدیقی رأیت صدیقی مررت بصدیقی متحصید صدیق مضاف بیا هست دوست من زمانی که مرفو شد زمه تقدیری منصور شد فتح تقدیری مجرور شد کسره تقدیری جا از صدیقی رعی صدیقی مررتو تو به ولی, ولی هر کلمه ای نکه مضاف بیا باشه خودش میگه ادامه بس میگه غیر تثمیه البته تسمیه نباشه اون ای که, که بیا مضافه اون کلمه تسمیه نباشه, نباشه. نباشه. چون اگر تسمیه باشه تقدیری نیست مثلا جا جاء <صدیقا> صدیقایا جاء صدیقایا دیدید که باشه مرفوشده مصنا مصنا با الف مصنا با الف مرفوشه نورش حذف شده دیگه تو مضافه جا صدیقایا اومدن دو دو سمن پس میگه کلمه ای که مضاف بیای متکلم باشه غیر تثمیه البته اون کلمه تثمیه نباشه و جمع مذکر سالم و جمع مذکر سالم؟ نباشه ماننده جاه موسیقی جاه موسیقی نه نه میگه این کلمه مختص به مقصور هست و کلماتی که مضافه بیای متکلم باشن ولی اون اونی که مضافه یا هست یک تسمیه نباشه دیگه چه نباشه چون خودش جلوتر توضیح میده وقتو اینجا نمیبریم در قسمت هشتون توضیح میده بریم جلوتر نحو القاضی تقول جاءنی القاضی جاءنی نعم پای رفتیم آه پایین رفتیم درست رفتیم خب یعنی الان کدوم رو باید توضیح بدیم بله بله بله نحو غلامی معنی کلمه چه؟ غلام جاءنی موسا و غلامی جعا فعل ماضی نون نون بقایه هست یا مفعول, مفعول هست موسا فائل هست ولی علامت رفت چیه؟ تقدیر. تقدیری. تقدیری بله زمه تقدیری یا تقدیر زمه و غلامی و هر فعت به غلام مثل موسا مرکوه ولی میبینیم که زمهی در کلمه غلام ما نمیبینیم پس این لفظی نیست این چه هست؟ تقدیری, تقدیری هست. چرا تقدیریه؟ چون مضاف به یایی مذافع به چه هست؟ یا و رعی تو موسا و غلامی اینجا هم در حالت نست هم اعراب موسا تقدیری هست محمل غلام. چون غلام مذافع به چه یا هست؟, هست و مرن بی موسا و غلامی اینجا هم کسر چه هست؟ تقدیری هست در موسا به خاطر که اسم مقصور هست در غلام چرا تقدیری هست؟ طول مذافع یا هست اثامین سن سنف هشتون ان یکون الرفب تقدیر ضمتی و نسبو بالفتحه تی لفظان والجروب تقدیر کسره هشتونین سنف این هست که رفب با تقدیر زمه باشه رفب با چه باشه؟ ولی نسب لفظی باشه با فتحه لفظی جر هم تقدیری باشه با كسره پس در دو حالت اعراب تقدیری باشه یعنی در حالت رف و جرد در حالت نفس ظاهر باشه چه باشه؟ لخزی باشه این مختص چه کلمه و ویختصو بالمنقوس این صرف مختص منقوص هست و هو تعریفش میکنه ما آخرهو یاون مقصور ما قبل ها مقصور کلمه است که آخرش یایی باشد که ما قبل اونیا کسره هست سنف هشتوم که رفت با تقدیر زمه باشه جر با تقدیر کسره و نسب لفظی باشه مختص منقوص هست منقوص اسمی هست که آخرش یای ماقبل مکسور باشد مانند القاضی الداعی، الرامی یایی که که ماقبلش چه باشه؟ نحو القاضی پس کلمه القاضی در حالت رف زمهش تقدیری است. در حالت جر کسرش تقدیری است. ولی در حالت نست فتح لفظی هست مانند جانی القاضی میگیم القاضی فائل مرفو با زمه تقدیری رأیتو القاضیه قاضی مفعول بهی منصوب با فتح فتح لفظی نه فتح لفظی بفتر رو مگر نمی بیرید پس لفظیه دیگه ظاهری، تقدیری نیست و مرمتو بالقاضی دیگه نمی تونیم بهش کثره ظاهری بدیم لفظی بدیم کثره هم چی شد تقدیری اتاسه و آخرین قص دقیقه داشته باشید ایکون الرفعو به تقدیر الواب ایکونت يكون الرفعو آقا رفع با تقدیر الواب باشه علا خودش میگه مختصر چی کلواتی هست و النصف و اما نصف و جر با یای لفظی نصف و جر چی باشه؟ یای لفظی و یختصو بالجمع المذکر سالمی مضافن الى یای المتکلم مگر قبلا نگفته بود کلماتی که مضافر بیای متکلم باشن اعرابشون تقدیری هست جز مسنا و جمع مذکر سالم گفته بود دیگه نه؟ خب موسنزا زمانی که مضافه بیای متکلم باشه در حالت رف علفش ظاهر میشه و در حالت نیست بیایش ولی مذکر سالم نه زمانی که مضافه بیای متکلم باشه در سه حالت ایرامش تقدیری نیست به خاطر این اونجا استثنائش کرد که اینجا توضیح میده میگه رف با تقدیر زمه باشد و نس وجر بایای لفظی و يختص بالجمع المذكر السالم این مختص جمع مذکر سالم است ولی چه زمانی؟ مضافا الیه علم متکلم زمانی که جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم باشه کلمات دیگه به غیر از جمع مذکر سالم و مصنف زمانی که مضاف بیای متکلم باشن در هر سه حالت اعرامشون تقدیریه ولی جمع مذکر سالم اگر مضاف بیای متکلم باشه در حالت رفع فقط اعرابش تقدیری میشه در حالت نصب و جر اعرابش چی میشه لفظیه, لفظیه. مسنا نه مسنا چه مضاف بیای متکلم باشه چه نواشه اعرابش تقدیری نیست کلمات دیگه بغیر از جمع مذکر و مسنا زمانی که مضاف بیای متکلم باشند اعرابش چه در هر حالت تقدیریه پس فرقه کلمات دیگه و جمع مذاکر سالم چست؟ زمانی که مضاف بیا باشن اونا در هر چه حالت اراشون تبدیری هست ولی جمع مکر سالم چه زمانی زمانیامش تبدیری هست در حالت رحتن حالا خودش میگه. تقول جا جانی معلمی جا جانی معلمییه شما وام ببینید؟ نه اصل معلمویا معلمی اصل این چی بوده؟ معلموية. در عصبود معلمون جا انى معلمون بعدش یاومده نون بخاطر مضافودن چه شده شده معلمیا خوب اجسامه الواو او و في کلمه یک واحده و اوله من هو ساکن این قائداست میگه وابویا در یک کلمه جمع شدند اولی ساکنه این قائد کلیه در این در همچین حالاتی واب تبدیل بیام میشه تبدیل چی میشه وقلبت الواو تبدیل به شده؟ تبدیل بیا شده و ادغمت خلیا و دتا در همدیگه ادغام شده و اوبلت الذمه بالکسره مناسبه حالا که واب را تبدیل بیا یا شد زمه هم به خاطر این تبدیل به شده که همیشه حرکت مناسب یا چیست؟ است؟ همانطور که حرکت مناسب واب زمه ها فصاره معلمیه پس جاعنی معلمیه میگیم جاعنی ترکیمش قبلا را شد معلمیه میگیم معلمی معلمی میگیم مرفوع با واب تقدیری چرا این جمعه میگیم بازم میتقدیری؟ چون جمع مذکر سالم از اون سرفای بود که رفتش با واب بود نصب دچارش دایا حالا که هم تقدیر دیگه نمیدونیم ذمه میگیم واه تقدیری میگیم چی؟ یا که هم مضاف الیه هست محلن مجرور در حالت نصب بدور دارن در حالت نصب و جر یا لسیه تونیا رو میبینیم اینا دقیقاً تقدیر رو نه یک یا یا متکلم و یک یا علامت اراو دو تا یایم چند تا یایم یکی از این دو یاها یا متکلم و یا دیگری چیه علامت ارابه علامت ایرام. رأيتو معلمی یا میگیم معلمی مفهول بهی منصوب با یا دیگر مضاف اله مررتو به معلمی م... معلمی مجرور یا اولی علامت نصف و یا بعدی یا متکلح یعنی معلمان من آمد معلمانم را دیدم رد شدم از معلمانم پس السنفه هایی مختلف اعراب رد شدند درس بعدی در رابطه با منصرف و غیر منصرف هست